شرکت عرس تارلا امین یکی از بزرگترین مجتمعهای گلخانه ایران در منطقه آزاد عرس است که با فناوری نوین هیدروپونیک و استانداردهای جهانی سالانه حدود هفته هزار تن فلفل دلمه بادمجان و گوجه فرنگی تولید می کند و 85 درصد آن را صادر می نماید. این شرکت طی سالهای اخیر دامنه فعالیت خود را به تولید و صادرات مواد غذایی خشکبار، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، ادوات کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر، احداث سردخانه، کارخانه، بسته بندی، پروژه های نیروگاهی و کشت بافت گیاهان گسترش داده است. در سالهای نخست شرکت با هدف احداث بزرگترین گلخانه هیدروپونیک کشور در منطقه آزاد تأسیس شد. بعد سالها با افزایش سرمایه تغییر مرکز اصلی به سایت جلفا گسترش موضوع فعالیت به الگویی از کشاورزی صنعتی و صادرات محور تبدیل شده است. شرکت در سال 1393 تأسیس شد. شرکت به صورت سهامی خاص فعالیت می کند و سرمایه ثبتی 390 میلیارد ریال است. مجتمع گلخانه در پنجاه هکتار زمین با سی هکتار سطح گلخانه 400 نفر اشتغال مستقیم دارد. مدیران شامل یوسف ابراهیمی رئیس هیئت مدیره محمود ابراهیمی مدیر آمل شهریار ابراهیمی نایب رئیس هیئت مدیره و علی حضرتی چاخلو عضو هیئت مدیره هستند خانواده ابراهیمی در دهها شرکت مرتبط از جمله صنایع آذر فولاد امین پارلا تجارت امین گوزل طبیعت ارس و تامین انرژی پایدار یانار نقش کلیدی دارند شرکت تمام تصیلات خود را 1100 میلیارد تومان از بانک تجارت دریافت کرده است زمان نامه و اعتبارات اسنادی ندارد منابع مالی در بانک تجارت حدود یک میلیارد و سیصد و شست شش میلیون تومان است شرکت های مرتبط مانند سنایه آذر فولاد امین و دیگران تصیلات قابل توجهی از بانکهای دیگر دارند اما منابع متوسطی در بانک تجارت نشان میدهند شرکت با تولید صنعتی صادرات مهوری و تنوع فعالیت ستون کشاورزی مدرن ایران است بانک تجارت به عنوان بانک عامل اصلی میتواند با خدمات خزانه داری گروهی تامین مالی زنجیره صادراتی بیمه صادرات و راه اندازی صندوق سرمایه گذاری کشاورزی همکاری را عمیق کند